در روزگاران قدیم اربابی بود که خیلی ظلم روا می‌داشت و نسبت به زیردستاش و کسانی که براش کار می‌کردند کمترین رحمی نمی‌کرد و اونقدر از اونا کار می‌کشید که بیچاره‌ها از پا در میومدن و خسته میشدن و قوای خودشونو از دست میدادند حتی روزهای تعطیل هم بهشون فرصت نمیداد تا استراحت کنند در یکی از ایضها هنگامی که تمام افراد پس از کار روزانه به دیدن اقوام و دوستان خود میرفتند، این ارباب ستمکار تمام روستاییان خود را رو برای کوبیدن خرمن به میان انبار فرستاد این افراد بدون اون که لحظه ای دست از کار بکشند چند شب پی در پی به کوبیدن خرمن پرداختند و به قدری خسته شده بودند که به زحمت میتونستند خودشون رو سر پا نگه دارند یکی از روزها ارباب در حالی که چوب زخیمی در دست داشت سر رسید و متوجه شد که افراد خرمنها را با عجله نمیکوبند. بنابراین چوبش را در هوا تکون داد و گفت جانیای یای تنبل اگه تمام خرمنایی که در این انبار نکوبید حق ندارید از انبار خارج بشید ولی روستاییان از ارباب خود خواستند تا اجازه بده خرمنکوب رو به عصبی ببندند چون با این ترتیب کارها بیشتر پیشرفت رفت می کرد. ارباب فریاد زد. چی گفتین؟ به شما اسب بدم؟ بدبختایی بیچاره اگه بار دیگه چنین تقاضایی از من بکنید اونقدر شما رو می زنم تا دیگه از من همچین سآلایی نپرسید. من باید استراحت کنم و شما هم باید کار خودتون رو به سرعت انجام بدین. به محض اینکه ارباب خارج شد روستایان شنیدند که کسی میگفت ایست. بعد صدای اسبی به گوش رسید و زنگهای دهنه اون صدا کرد و مردی اسبی رو به داخل انبار کشید. این شخص چه کسی میتونست باشه؟ یه پیرمرد بود که بر اثر سن زیاد پشتش خمیده شده بود. ریش سفید و بلندی داشت و چشماش مثل شعله آتش می درخشید. پیرمرد به روسایان سلام کرد و گفت بیایید اینم اسب، اونو به خرمنکوب ببندید و هر مشکلی که دارید به کمک او انجام بدید. اگه میان جنگل رفتید و درختها رو شکستید نباید اونا را با گاری حمل کنید بلکه همه رو باید با همین اسب حمل کنید تا اونو به خونه ارباب ببره. اگه این اسب از حمل درختها خودداری و سرپیچی کرد، محکم و بیملاحظه بهش شلاق بزنید ولی سعی کنید؟ شلاغا به سرش نخوره هرگز چیزی بهش ندید بخوره شب هنگام وقتی اونو به طبیل بردین اونو به سقف آویزون کنین تا پس از کار روزانه تمام شب به سقف آویزون باشه این کار اثر زیادی داره بعد از اون که این حرفا رو زد از اونجا دور شد اسب به شیه زدن پرداخت و صداش شبیه صدای ارباب به گوش رسید دهاتی ها تازه به جریان امر پی برده بودن و با خودشون گفتند بیشک این خدای رعد و برق بود که این اسب رو به ما داد ما باید دستور اون پیرمر رو انجام بدیم بلافاصله اسب رو به خرمنكوب بستند و مشغول کار شدند اما اسب مرتبا شیحه میکشید پاها رو به زمین میزد سرش رو تکون میداد و حاضر نبود کار کنه. او رو شلاق زدند تا دست از لجاجت خود برداره رفته رفته همونطور که پیرمرد گفته بود کارها پیشرفت میکرد بعضی وقتها که کار مشکلی پیش میومد بلافاصله فاصله اسب کهر رو به انجام دادنش وامی داشتند و چنان چه زیر بار نمیرفت بیرحمان شلاقش میزدند و به چوبش میبستند. اسب بدون اون که استراحت کنه شبا کار میکرد وقتی شب به نیمه می رسید، او رو میان طبیه می بردند و سقف آویزان میکردند و میگفتند همینطور باش تا صبح هیچ وقت چیزی بهش نمیدادند تا بخوره. تمام زمستان مجبور شد مخفیانه ریزه و خورده های کاهرو بخوره و در زمستان هم شکمش رو با علفهایی که کنار پرچین میروید سیر کنه. از روزی که اسب که هر پیدا شد، ارباب ستمکار از نظر غایب شد. زنش همه جا دنبالش میگشت ولی اثری ازش به دست نیاورد. روزهای اول اسب، قوی چالاک و پرتاقت به نظر می رسید. اما بعد از مدتی لاغر و ضعیف شد. چشمهاش درخشندگی خودشون رو از دست دادند و لبهاش آویزون شد. دنده های بدنش قابل شمارش گشت و پشتش قوز برداشت و موهای بدنش ریخت. روزی زن ارباب اسب رو میان حیات خانه دید. به مستخدم خود دستور داد و گفت باید این اسب زشت رو به جنگل ببری و او رو نیست کنی چون به درد ما نمیخوره و دیدنش نفرت آور شده. مستخدم به جرگان پی برد و از کشتن عصب صرف نظر کرد. یکی از روزهای تعطیل موقعی که همه افراد مشغول تفریح بودند، عصب که هر از طویل خارج شد، وارد باغ گشت و به خوردن کلم ها پرداخت. ناگهان زن ارباب سر رسید و با اسب بدقیافه که با علاقه زیادی مشغول خوردن کلمها بود روبرو شد و با خشم غذب فریاد زد ای حیوون کسیف، کمی صبر کن تا ببینی چطور به سزای اعمالت میرسی. اون وقت با چوب زخمی محکم به سر اسب زد. به محض اینکه چوب به سر اسب خورد، اسب ناپدید شد و به جای اون ارباب ظاهر شد. اون وقت با صدای ضعیف و گلای آمیزی گفت: "آه زن عزیزم، تو چرا منو زدی؟ شاید برای اینکه چندتا تا برگ از گل کلمه با خوردم." برای من که در سرتاسر سر سال با گرسنگی و ناراحتی دست به گریبان بودم، این کلم بهترین غذا محسوب میشه. آن وقت زن ارباب تازه به اصل قضیه پی برد و بی اختیار جیغ زد. قیافه ارباب به کلی تغییر کرده بود. ریشهاش در اومده بود. ضعیف و سیاه به نظر میرسید. ناخونهاش بلند شده بود و سراسر بدنش مجروح بود و لباسهاش به کلی پاره شده بودند. زن دستش رو گرفت و او رو به گوشه اتاق برد تا کسی او را نبینه از اون زمان ارباب ساکت و آرام به نظر میومد و نسبت به افراد هیچ گونه ظلم و ستمی روا نمیداشت.